أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعظمين الذي لا تجامتها على أرجاء المشاعين اللهم ارحمنا جميعا از خیلی که مرحوم استاد در کتابشون آمده که از قبیل استحاب عدم محمولی است و از قبیل عدم حضری نیست اصلا راجع به بیروز توضیح از خیلی عدم حضری هم یک نوع عدم محمولی است فهم و این آقایی که درستا بیشون سرکت توضیح بده اون استحاب عدم چیز گرفته عدم نهتی گرفته که مثلا سابقا راضی نبود به تصرف در این مال حالان راضی. این عدم نهتیه مراد اصداد این نیست مراد اصداد عدم محمولی یعنی سابقا رضایتی به تصرف در اسطلاح رضایتی به تصرف مجانی در مال خود شلاشی وقتی این که ایشون می فرماد ازلی نیست حالا یا به اصطلاح بعضی ها مثلا چون در ادام ازلی قضیه ساله و موضوعه میخوام بگن اینجا ساله بنتفا موضوع نیست یا این یا بگیم نه مرادشون اینه که اینجا از اون عدم محمولیست که حالت سابقه دار اینجا بحث نیست اون اینکه حالت سابقهش محل اشکاله در مثل همون قراشیته شون نمی‌بینیم از هیچی نطفه ایم خانوم بسته شد وارشی بود یا وارشی نبود این معلششاله خو؟ اما اینکه انسان راضی نیست به تصرف مجدانی در اموالش این حالت سابقه داره. نباز اخطاری نیست این می‌کیش؟ عدمش عدم محمویی نه نیست. یعنی نه عدم اصالت ادم رضا در ماله به تصرف مجدانی فی ماله نه فی حاضر مال نه این ماشینی که باقی لذت. بلکه اشکالش هم همینه که این به درد ما فیلم می‌خوره. برحال ظاهرن مراد استاد از اون تعبیر این باشه که این از قبیل عدم ازلی نیست محل کلامه چون اون عدم ازلی حالا به تعبیر بعضی از قبیل ساله موضوعش نبود خورشیت از این مرادش از سالبه. یا نقطه دیگری ایگه از ساله و موضوع که نیم خواب باشه اما مانه نفی قطعا حالت سابقه داره چون انسان رازی نیست سر در اما این مورد به خصوص این مشکل عدم نصی حالا این یه توضیح بود واش به منجملہ و موجزانه راجبه عبارات استاد و بعد از اشاره شده که ان شاء الله واضح باشه باذن الله تعالی. عرض کردم راجبه آیات و روایاتی بود که در اصل اشعار در قرن شعر و در تعبیر معنایش شد. عرض شد که در در مجموعه روایات ما مجموعه کلمات فوق‌ها سنتا و شیعتا اینطور نیست که فقط ما شیعه سنتا و شیعتا به سه آیه قرآن را جب غشوه تمثب آیه به رشوه تەسوق شده. البته یکی آیه سفت. البته تعبیرش از کالون یا اکل همسوت دو تا تعبیر در قرآن اومده. یکی يكي... تفسیر آیه, آیه نیست لکن احتمالاً روایت تفسیر آیه باشه مضمونش با آیه میخوره و چون داره در یه روایت به هم مغره شافل یا امار فهو بل کفر بالله العظیم تعبیر به کفر شده ما در برآن آیه داریم من لم الله کن به ما الله احتمال داره که از سرم همه که با آیه نشده عنوان آیه به کار برده نشده لکن میگه هم مبرش شافل هفت فاقبا کفر بالله این احتمال است که این آیه مبارکه ناظر باشه به این ربایت مبارکه ناظر به آیه باشه و من لن یحتم به ما انذر الله یکی هم آیه مبارکه لا تأکل و هموالتون بالباطل و توزی بوده ها الالخوکام به این آیه بیشتر تمثب شده پس مجموعا سه تا از آیات کتابی تمثب شده برای باب رشوه که مربون شیخ هم معین نمی کنه. فقط ازمان هم از الله علیه العدلت که کتاب رسانت عربه اشمان باشه اصلا موجود به کلمه صبح دیروز متعرض شدی که احتمالا بعض از رقایات ما که سه از توان ساتقال الرشان اون اشاره به آیه باشه و اما روایاتی که صحف رو بیشتر میاره اون جزه سنن باشه یعنی رسول الله موارد دیگر یا هم جزه صحف قرار باید البته این در حد احتمال ما دقیقا نمیشونیم جزم به این پیدا بکنیم من دیروز ارز کدم که علمای یهود یا مثلا قضاتشون رشو میگرفتن در آیه البته این آیه مبارکه راجع به صبح کلن در قرآن کریم لحظه صبح سه بار آمده کلن و به نظر اشتراقی هم یک بار فیوسه تکم با به افعالش آمده ما دیگه از این لحظ سین و ها و تا دیگه موردی در قرآن نداریم کلن در کل قرآن این سه مورد صحبه هر سه مورد صحب هم تو سوره ما که هم که مشتمل بر اونا هاست به منافقی میخوره و از ولد اینا به یهود میخوره به هر دو میخوره این که الان به شیگر مگر به خاطر یهود مثلا وقتی ظاهر یک آیش هم ظاهرش نه که اونها مطلقا این کاره میکردن نه خصوص طایفه این بله یک آیه بعد داره که کسیرن کسیری از اونا ها احله مصر همه شنون نمیده لذا گفته شده در کتاب تصویر مراد علماء یه بوده که من دویده عرض کردن اما خودم هم که بر مراجعه کردن دلیلی بر تقسید سیدا نکردیم خیلی قرمی این در سوره ماده آیه 42 هست بعدشم 62 و 63 تماما در یک سوره هست و نزدیک به همه آیه صبح ما دیگه دیگه این در قرآن صبح نداریم و یه وقتی هستی که توضیحاتی از کردن واقعش هم دقیقاً بخواییم معادل این کلمه رو در پاسی الان یه چیزی شبیه ریشکن مثلا چیزی اینجویه با اوصافی که گفتم گفته شده یه نوع مرضیست در معده که انسان هرچی میخوره هی زب میکنه غذابه نابود میکنه غذابه انسان سیر میشه از اینم گفته شده به هر حال من در توضیحاتی که از کردم چون ما دنبال این حرفای این قال و قال خود اون واژه وسو و اتونان و به اصطلاح قدیمیان نورانیتی پیدا بکنیم برای خود من هنوز این لغز ابهام داره خود این لغز لغز صبح ابهام داره هم به خاطر علت استعمالش هم به خاطر اینکه اشتقاقش هم خیلی کمه ما یه اشراق از این در قرآن داریم یا سجده دیگه نداریم یعنی کل موارد این ماده 4 درصد کل قرآن بیش از این چهار مورد نداریم جاهایی که هم خیلی نداریم خیلی در شعره که نسبت داده شده مثلا یکی یا دو مورد خیلی کم داریم یه دفعی هم ارسن خدمتون یه راهیه که این ها هم انجام میدن البته خیال می‌خوان تازه شده به اسم فخول یا فلسطه یه و اون این که چون بیشتر روی خروف به جهو خروف رو صوت حساب کنن و اصواس و یک نوع رابطه بین این حروف حالا به هر شکلی شده باشه این اسوات با اون معنا پیدا می‌کنه اکثر از اونجوری که من می‌دونم اطلاعات من کامل نیست از کسی که متعرض این کار شده ابن جنیز در جلد 4 در خصائص خودش من قبل از این چیزی ندیدم که اطلاعات من استفهام من کامل نیست اما اوائل جلد اول خصائص به مناسات کلمه و اون اینه که ما اگر میخوام یه رابطه بین این اصوات و معنا پیدا بکنیم اون اصوات رو به شکل‌های مختلف جابجا جا بکنیم یه رابطه پیدا میشه. از خیلی ما تا دوسهمونن فیوقت عرب ثابته. حالا همش کار شده، میشه کار شده. اما این قدیمه بیش از هزار سال قبل بوده در زمان عربی که واقعا در بغداد یعنی نشر علمی خوبی انجام شده، مثلا برای شیعه خیلی خوب بوده، ابن جنی این رو به مناسبت کلمه داره به این معنا که کاف، غلام و میم و بعد این هم جابجا جا بشه مثلا کلمه، کمله، ملکه، مکله اینطوری ای قبول رو که از هر سه حرفی ما شیش تا هیئت درست میکنه. این خودش موثره محصره انصافه همونو من رو این درست لغتیش هم میخوام بشن و بعدها هم ما داریم در ازید کتب لغتی دارد درستشی پیرن به همین رو اکتفا و یکی از راه که به نظر ما خیلی مؤثره در فهم معنا از یک سرم و ترابطه بین اونها هم کسرت استعمال و هم یک معنای ثابتی تو بین ها باشه از خیلی اجمالا نه وقتی و این صحت رو حتی اوجهی که من الان تو ذهنم میاد با این حالتش جا به جا چیزی نداره نه خودش خیلی مصرف داره مثلا صحت سطحه مثلا که اول بشه یا هسترسه مثلا یا هسترسه مثلا این شش صورتی که تصور میشه از این سه هر سه سه کلمه سه هر فیکه اون شش صورتش هم خود رو نظران الان اگر مصرف داشته باشه بقیهش الان تو ذهنم نیمت که دیده باشم اگر هم باشه رو یکیش و خیلی هم اونم نادره خود صحبت هم نادره لذا ما خیلی خیلی دقیق نمیکنیم. مرازفش رو در لغت پیدا بکنیم مثلا در لغت فارسی، یکی به معنای حلاک نیشتر معنا شده از احادیس فرغمبر هم نه افضل که تی که شکمی که درش سوخت باشه فننا را اولا به آخر سوخت آتشه مثل این نه لذین یک کلون انبال ما این نه ما یک فیبوتون نارا در مقام تجسوم عملی هست صحت تجسم شده با آتش فننا نارو اولا به بله اکل از صحب. بله اینم داریم حالا ما با این مجموعه شراحه صحبت به فارسی چی تذیم کنیم گیر داریم مضمونی که اینها میگن تقریبا کلمه صحبت مرادت میشه با ریشه کن. چیزی که از به مید. از ریشه از بین میداره استعصال تعبیر به استعصال استعصال از اصل منه ریشه این چیزی که از ریشه میکنه این چه واژه قون از ریشه درنیاره میاره برانداز مثلا چیزی که برانداز بی خانان سوس مثلا ریشسوز نابودکن چه هر هر چی فکر کنیم هر دیگه که فکر اون نرسید که بیایی بگید فارسی از براندازی قوی‌تر از ریشه یعنی چیزی که حالته نابودیه نه اینکه حالت این که مثلا یه بوتهی باشی شما برگاشو بکنی درست نه از ریش کلن در که کلن نابود میشه و انسان هم تبدیر تونجیه این تونج، جای بحث نیست وقت در روایات خود اهل سنت هم داریم ما هم داریم از رسول الله هم نقل کردن که که این صبح چیه فهمده از رشاف الگوب این هم ما داریم از احل سحابه هم داریم که تفسیر بر رشاف الگوب کده لیکن از احل سحابه از زمان امیر و و غیره داریم که تعمین داده شده مثلا سمن المیته و بقیه اضافه شده یعنی تقریبا محرمات اضافه شده و اونی که غالبا در اصلش بوده همون رشاق الهوک بوده پس تا اینجا اولا من شون جود عرض کردم مال غلم یهود انصافا آیاز نمیخوره اون وقت این راجع این باطل اگر این مبنا درست باشه که در ذهنیت این بوده که شوف یعنی رشوه. چون عرض کردم در کتب اهل سنت هم اگر مثلا بحث باشه هم اگر بخوام مصادرش رو با دقت نگاه بکنم، تفسیری رو ببینن، چیزشون با سند درام کرده. و اگر بخوام اجماع رو ببینن، ذهن مرسود سیفی رو نگاه بکنن، چیزشون بدون سند درام کرده. ادعای صحابه داریم شده که سر تو هم نوشبه راجب سمت میگه زالیکن رو خبر کفر به الله لحظیم در رواس ما هم داره و هم مرش آفر بخ رو کفر به الله این یک ذرافت داره یعنی از اون جایی که گفت مثل کویت مونیه دمامش باشه از نور بنامش داره این یک ذرافتی داره اون ذرافتش اینه اون آیه که سمته و احلی محق کارون بعد از اون آیه که خداوند میگین احبار و رحبان چیکار دید؟ ربانیون و احبار ربانیون رو ده از علمای مفصل نوشتن علمای مسیحی احبار علمای یهودی این اشتباه ها. هر دوشون علمای یهودی از ده مفصل نوشتن اصلا ربانیون یک رب جمعه علا صلاح نسبت جمعه علا صلاح قاعده ربیه ربیه مثل اصطلاح ما که الله بزرگان یهود که در یک مقاوات خالی بودن دیگه ها الان منزل ربی از این تربیه میکنن ربی مثلا این جلزه فرده کلا چند تا ربیه های بسیار بزرگ، این به عربی که آقای ربانیون شده یا ربیون اصل این که این کلل ربیست که یک کلمه یهودی، یک کلمه یکیدوریست و بزرگان علمه هاشون که تبیلا در مقام نشه گفت مثل, مثل, مثل اوسیاریون هست از اونا وسی نیستن اصطلاح ما در مثل شبیه مقام حسمن از اونا تحبیر بردی می کنند که همین کتاب معروفه می شنا و شرقه او که تلمود باشه تلمودن دو تا سی تلمود در ارام بابرد نرشته شده تلمودن در فلسطین نوشته شده که این بسیار رقبانیون یعنی رقبیه ها این اضافه ها طبیقی کتاب کردن خبی کتاب قطوری بوده من دیدم در جایی که دو میلیون نیم سقف میذاریم که چپی کرده بوده است. حالا شنبه دو میلیون سقف. بسیار کتاب را گفتم که یکی دوستان دوستانم که از کرده است. به مکه پخش نمیکنه در پیتزواین هست. انجام هست. یک جدشونو میگن دیدن تندجو یک جد. دستیار خود را بیات این حالا بیونه یا رتبانیون. رتبانیون. رتبانیون. هم هم غربانیه بودی هم هم غربانیه بودیم هم هم غربانیه بودیم بعد از این آیه اکارونل صبح آیه بعدی آخر آیه اینه و من لم یه کن به ما انزل الله فاولاری که همه کابه بودیم دقیقی از چی شد یعنی این بحث این بوده که رشوه مار این آیه صبحه اونا میگفتن نه رشوه مار آیه بعدیه این رو posteran می شنو نشه البته اینجا سه تا آیه حالا اینا یک بحثای تفسیری لطیفی داره مثلا که مقام نیستم اول این من باز من باز آید و من لم یحکم به انزل الله به باز دو مرحله آیه دیگری و من لم یحکم به ما انزل الله به الائکه به نظرم همون ظالمون باز آیه سوم من لم یحکم به ما انزل الله به الائکه همون کافرون سه تا سطر اومده کفر و ظلم و اون وقت بح... دقیقه پس ادی با آیه اکان لسوهت هم از سوهت برای حرمت رشوه از اهل عهد می گفتن سوهت رشوه ادهی گفتن نه سوهت گناهان دیگره مثل مهربقی و مثل سمنون میتب و سمنون خمر و این جو چیزا اما رشوه از بالاتر بالاتره خوب یک کنی رشوه از صحب بالاتره رشده زه اون آیه بعدیه در سوره ماهده ملازمان آیه 42 رشده آیه 43 و من نمیحکن به ماهنظر الله با اولایی کافرون این آیه مربوطه به رشده هست نه اون آیه یعنی مخاطم بگن تأکید در رشده خیلی بالاتر از صحبه صحب صوت مقامش بالاتر از صحبه همیتون منافات نداره یعنی اونها در رشوه مثلا مستعارب خارجیشون به رشوه هم صبح روگر از کلم هم هم هنوز نمیدونم که این لفتون آیاز قطعا تو مدینه جای نازل شده این الفاظی که مقدار تحقید داره یک مقدار سنگینه مثل مثلا الفاظ سنگیز مثلا. این الفاظ غالبا مکی هستن در قرآن این ها غالبا مکی هستن سجیب این ها غالبا مکی هستن مدنی ها یک مقدار مفرداتش واضح‌تره غیر از مفردات در مکه و یه یکم سالکی داره نمیخوام وارد البته گفته شده سوره مائده بعدش سوره مکه نازل شده چون محسن آیه اقم اليوم اکبر و کن, کن هم همین سوره مبارکه هست. این گفتن روی زیهجه به صورت ما و حتی اهل سنت هم دارن در تفسیرشون و هر حال چون یک بحثه تفسیری خاص داره که نمیخوام اشاره اجمالی بکنم ما هنون هم که هنوزه نمیتومن این لفظ نمیخوره به الفاظ مکه به الفاظ مدینه نمیخوره قد لفظ صحب واجه صحب به مکه بیشتر شبیه تا به مدینه سوره که مدنی و حتی از اهل سنت حتی شیعه در مجموع بیان نعارده که سوره نداره بشمله ها ما کم داریم سوال تواقیه نه سوال تواقیه کم داریم که یک سوره به سوره کامل یک جان آتر شده باشه در آیه سوره اما سکت نمی‌کنم درست باشه احتمالا این مقداری شباب شواره من باید, باید بحث نشه پس یکی راجع به این آیه مبارک هست به زمینه روایات که شامل میشه و آیه دوم و من لم یکم به ما الله فا اولارت همون کافرون این هم تفسیر به شده چیزه همه هم نیست دو تا حرف, حرف بلی نیست لیکن این مدنی بلی میشه که رشه رو کندر تو قضاوت بگی اما تو نظام اداری نگیم دیگه چون ما در بیختم اما انظر الله بحث قضاوته البته بیوزم اشاره کردم بحث قضاوت یه بحث اساسی تو جامعه چون اجراع قضاوت میشه یعنی اونا معتقل که ما اگر دستگاه قضایی صحیح داشته باشیم خواهی هم خواهی نظام اداری هم تقییم میشه ما در تاریخ محاسب ایران در سال هزار و سال که الان چلو سال، 1115 سال قبلی قبل اولین باری که در زمان مظفرالدین شاه درخواست اصلاحات شد، با عنوان ادارتخانه بود. اصطلاح، عنوانش ادارتخانه بود. این کلمه ادارتخانه ادارت بعد حالا بولی که از اون واژه توجیه تو است، تو که کارش نداریم، منتهی شد به مشروطه. که مشروطه نظام سیاسی یعنی مشروطه یک نحوه حکومت خاصیه. ٹھیک ہے اس کو لا در ایران 1318 اون حرکت اجتماعی که شروع شد با عنوان اداریات شروع شد و خیلی در سال 1324 6 سال بعد که این حرکت به نتیجه رسید تبدیل شد مشروطه و تبدیل شد تایید مجلس که مظفرالدین شاه تأسیس کرد مجلس شورای در اسم خود اون که یک شورای اوضعی هم این این در این شاهها انصافاً آن توی اساساً 11 تا بار باقی مونده یه نواری هم هست از مظفر نشاط برای تاسیس مجلس اون نوار درسته اینها سازه از آلمان و خیلی و خیلی از زبز خراب بوده یک صدای خیلی مشهوری هست این درست این اولین زرق های تو ایرانه در سال 1924 صدای اون زرق شده با عنوان تاسیس مجلس شورای ملی حالا اگر این دقت بفرمایید ادالان همیشه تاریخی یک امر سنگینه اینطور نمیگه اگه ما بگیم قهوه کاریه اصلاح شد بگیم برنامه کاری شروع شد که هدف در و ادعایی این بود که تمام افراد از پادشاه تا تبعات کانی همه باید در مقابل آن ارسالی باشند. این که شد تبدیل یک نظام اجتماعی میشه. <تصفيق> یعنی مجبور میشه خود شاه را هم پایین بپیشه. دکارت میگه سری اینکه ادالاتخانه در ایران مخرب شد بعد نظام سیاسی درست شد، اجتماعی درست شد. چون نه هر کسی این بود که ما خود شاه را هم محاکمه بکنیم. که خود شاه این کاره کرده خب طبیعتا این باید دیدشون به شاه عوض میشه با شاه مصطفی دو شاه دیکتاتور فردی که حرف نمیکنه که نمیشه کاری کرد شخصی که من هرچی گفتم قانون هرونه غیر از من قانون وجود نداره اینا مجبور بینش کردن که یک چیزی به نام نظام به نام قانون باشه که شاه هم در مقابل او تمکین بکنه این تنبیه الملله مرحوم نایمی که در سال 1327 چاپ شده تعجب آورم هسته این چرا برای دست داده سخیل چاپ شده این تنبیه الملدهیشان خلاصش همینه خلاصه کلمات رقم که در نجف این کتاب رو نوشته خلاصه مطلبش اینه دقیق فرمودی این مطلب من لمیه کن به ما انزل الله و اولاق مهم کافرون مطلب صحیحیست ما بیم رشوه رو اساس بدونیم یعنی به اصطلاح با اتشار رشوه و احکام خاطر پول به اعتبارات اجتماعی عوض بشه اصلا حکومت الهی از بین میره کوف بالله این یک مطلب درستی است و مطلب صحیحه از روایات آیات دیگری که داریم لا تاکول و کن این در سوره بقره است گفته شده سوره بقره اصولا ترکیبا اینطوره معظمش در اوائل مدینه نازل شده چند بار عرض کردم آیات مکی مراد ما از آیات مکی آیاتی که قبل از هجرت ناظر شد چون یکی اختلافی هم که معیار در آیه مکی و مدینی چیه بیشتر این رو قاعدم و همین هم درست باشه. لفت بحثی که خودش داره که هرچه قبل از هجرت مکی اگر بعد از هجرت بوده ولی اون زمان نزول تو مکه بوده مثلا توی هجرت الودا بوده یا توی فتح مکه بوده اونا هم مدنی هست مورد از آیات مکی آیاتی نیستی در شهر مکی نازل شده نفرمونید؟ ملیار در مکی و مدنی الان روشن شد هجرت قبل از هجرت بعد از هجرت پس هرچی که قبل از هجرت باشه مکی هرچی بعد از هجرت باشه تو مکی نازل شده این نقطی هم کنان ارز کردن اشاره به همین شاید این آیه سخت هم گفته شده که بعد از سوره ماهده تو راه نازل شده و اگه بعد این حجت الودا شده و تو راه نازل شد اما همه رو به عنوان مدنی حساب میکنن در خود مدینه نازل نشده اما به عنوان مدنی حساب میکنن حالا به هر حال جزوه آیات مکی ما قالبا به خاطر وضع خاصی که داره نه خطاب یا ایوهالدین آمنوت تو آیات مکی هست نه قالبا احکام هست بیشتر اصول کلی حالا غیر از این که عدبیات خود آیات را قرار میکنه آیات مدینه از وقتی که پیغمبر مدینه تشریف کردن خب دیگه یک مشتمع مشتمع اسلامی بود سعی کردن از همون لدالورود تشریعات رو انجام بدن همین نماز جوهنه ایشون هنوز تو قبا بودن تا حضرت از مکه به ایشون ملحف شد ایشون همون به محصود قبا تا وارده مدینه نشدن با اون اماناتی که بود و با اون خانمهایی که عقب مونده بودن اینها رو بودن و پیغمبر ملحب شدن پیغمبر از اونجا حرکت کرد به طرف مدینه در این مدتی که ایشون قبار بودن در روز جمعه نماز جمعه خونده این از اون اولی که دیگه اسلام یک شکل حکومتی به خودش گرفت نماز جمعه خونده شد این سر بحث مسئله غیبت و شیعه اشتار کردن همین بود این می گفتن میگفتن نماز جمعه با برای نمازها فرق داره. این نماز سیاسی این نماز اجتماعی و همینطور هم بود دیگه. خب در طول تاریخ وقتی در خوفه اسم خلیفه می‌برد، این معنای سیاسی مثلا در بغداد، در همین زمان شیخ طوسی که بغداد بود که بعد مهاجر مجبور به مهاجرت شدن حدود یک سال در نماز جمعه خطفه رو به نام خلیفه فاطمی که اسلامی بود، در لغمه صعود می‌کند. خلیفه بغداد اسمش القائم بن بود به اسم او صفه نمی خود ناخدای خلیفه بغداد باشه نمی شد آمد بود که لذا ایشون استعانه پیدا کرد به طلاجقه که سنی های متاسیبی بودند و و او از دست این شیعه های فاطمی که شیخ هم هجرت کرد به نجف رضوان شیخ با این حادثه در همین ایام حادثه پس مشكلات قبلی هم بین سنی و شیعه و چون سنی های اهانتی بر امام حسین و جعفر که کرد حرم وجودنده بودند، من قبر کنده بودند، مشکلاتی مشابه کارهای متراکم نسبت به حرم سید الشهدا، بعد از این بیشتر چهار سال شیخ چه حجاج به نجف میکنه این اوج مشکلات بغداده خلیفه فاطمی یا اسماعیلیه در مستنصر بود، خودسر به اسم خود یک سال در بغداد در نام خود، خود به اسم خلیفه مصری خوندن جور. مگر اسم خلیفه عباسی. تا سلجقه آمدند و اون در صبا دو و بعد برگشت از خلافت به خود بنی عباس درazem نماز جمعه به عنوان همیشه از همون اولی که پیغمبر خوندن به عنوان رمز جهات سیاسی خونده شده. مثلا رمز عنوان یک جبهه اجتماعی و سیاسی و قبول نظام به اصلاح انجام می شد. حالا من وارد بر... لذا تدریجا در خود مدینه تشریعات شروع شد. سوره باقر میگن لهوائل ما نظر به مدینه یه مقداری از تشریعات اینجا البته این تشریعاتی که الان در این به هست به لحاظ زمانی فرق میکنه مثلا قبل از این آیه آی مبارکه آیات سوره فرد از این آیه مبارکه آیات سوره این تفصیل آیات سوره از سال پنجم نبوت و پس خندغه انگار اینطور نه همین راجع به این آیه اونواره که نا تأکن و همگاه لکن بینکن و توزلوبه ها علال حکام اینجا کلمه توزلوبه از باب افعاد من سابقا هم به مناسبه متعددی ارز کردم دیگه حالا جاش اینجا نیست باز یه وقت دیگه. در لغت عربی چون یک حالتی بوده که سعی میکردن لغت رو حالتی حالت به اصلاح انضباطی پیدا بکنه حتا سعی می که از, از ما هم معنای حرفی درسو فعی درسو کنن مثلا نردی می گوستن انجل زیدون دخلیف نرد اسوه زیدون دخلیف سبا احرق زیدون دخلیف ایران احرقه یعنی دخلیف ایران این اصطلاح بوده مثلا کلمه درد رو خود کلمه درد از این معنای اشتقاقی فعیی هم درست می مثلا دلا آن دل بود هم صفت به هم به اصطلاح ثلاسیه مجرد و هم ثلاسی مزید از باب افعال، عذ لاذل ربو. و اینم یک مقدار سماعیه، یعنی این نمیشه به قاعده. میگن در لغت عربی اینطوریه. بله، اگر دلاله که به اصطلاح یعنی اگر گفت دلذ دل دل رو دلا ماده سلاسی مجرد یعنی از شاه بیرون کشید دل رو کشید اول کشید از شاه بیرون اگر گفت ادلا لا باب سلاسی مجید یعنی وارد شاه کرد و اکسا هم این اگر درست باشی که زوانم هم میتواره این سماهیه این دیگه آبالغیاتی نیست دلا یعنی از شاه بیرون کشید دلا یعنی کرستاد شاه ادلا یعنی به اصطلاح ارسله رو ما اینجا هم ایشون داره یقال ادلا دلوه ارسله ها یعنی انداخت دوی شا دلوه و سرسله مثلا و دلوه ها اخرجه ها این دوتا هم دیگه استعمال میشن با اینکه هر دوی و ازباه سرسی مجردیه که ازباه سرسی من اونی که در اینجا ما در قرآن داریم تو دلوح. خود روبه ها یعنی که ما انسان مال رو مثل درکی میفرسه این مار رو میده به غازی که از غازی به نفع خودش استفاده کن این که به لفظه کلمه اون وقت مشکل این آیه مبارکه یک ذهبی داره اگر همین مقدار بود این باز بر, بر نبود لا تأکل و لا تأکل و اموالتون بینتون بالباطل و خود روبه ها الالحکام لطه کدو فرید من هموار اموال ناس ازم و انتون تعدمون این و انتون تعلمون یعنی شما خودتون این گناه معزاده این گناه رو انجام میدید و خوب دقت بکنید این هم یکی از اصطلاحات قرآنی و من معتقدم که احتمالا این اصطلاح اصطلاح قرآنی سرس نباشه این در زبان عرب بوده ادبیات بوده لا تأکل و اموال کن خب این خیلی عجیبه لا تأکل و اموال کن اموال کن این اموال کن مخصوصا که بعدش داره به لتأکل و فریغن من اموال ناس یکی اولش اموال کن <تصفيق> بعدش فریغن من اموال ناس لذا به ذهن این حقیل اصلاب و تختیر این طور رسیده از کردم سابقه هم از کردم احتمال قدیل دن که این اصطلاح باشه شاید الان هم ما این اصطلاح در زبان عرب بکار نبریم اموال اگر با بینکن با هم بیاد این طور نباشه جدا بیاد این مراد مبادلاته لا تأکل و اموالکن بینکن این اموال با قید بینکن اکن بین اکن. این ناظره به مبادلات باشه اما اگر نه نظر مبادله مبادلات نباشه مثلا مال مردم نخور اونجا بگن ده تاکلو فریق هم من اموال دومیش مبادله نیست باشن شد اموالکن بینکن اموالکن با بینکن با هم معنا بکنی نیزن باشن شد لا تاکلو بهام که شدن خیلی عجی و سرپ انمالکن که من را با اقلل ق آتون و سرکول به ممنون من فکر می‌کنم این کلمه بینتون ننونشین در ک تصییل عرض میکنن. کلمه بینکن رو باید اموال با همدیگه مخصوصاً نما بکنیم. مثل اینکه پیغبر به هم گرددن مثلا گردند در اصطلاح نه درس دسته. گردند را ما در فاصل نه خود با نه. که اگر چیزی رو فروختی باید یدانبیت بود باید مشابه باشه یدانبیت به نه در مقابل نسیه یدانبیت رو با هم معنا بکنید نه کلمه به کلمه این اموالکون بینکن ببینید اموالکون بینکون با هم دیگه معنا بکنید یعنی در مبادلاتی که انجام میدی مراد اموالی که میخواین با هم و به شیقه جمع آورده نظرش به جامعه است مبادلاتی که تو جامعه انجام میگیره اما اگر نظر میگی بشه شما مال مردم نخورد به که اون ثریه من نخواد این دوومی دیگه مبادله نیست. ظاهر آیه مبارکه اینطوره در مبادلاتتون در معامله در کارهایی که انجام میدین پول میگیرین، میگیرین کل جامعه. تا کلو به زنگین با تاکول و اموالکون ما نظره. اموال به اصطلاح به کم اضافه شده، کم در اینجا مثل عام مجمعیه، نه عام استراحی. تو و نه زبادستی تو وقت خاص عرض کردم. درست در اصول چیزی به نام عام مجموعی داریم. اما عام مجموعی به هیچ عام آم نیست مرکبه نه، اینکه آم باشه. و در واقع عربی هم توند که من از من گرفته لفظی رو برای عام مجموعی ما نداریم تو واقع عربی. برای عام بدلی داریم مثل ایو. اکرم ایو را جورند یا تنگین، اکرم آلم هم برای عام بدلی داریم، برای آم هم داریم مثل اولاما. اما برای عام مجموعی که مثلا اکرن جماعه العلماء تو تان بگید ممکن بود جماعت العلماء مراد مجموعه جمی باشه ما یک لحظه که وضع شده باشه چه به نحوه حرف باشه چه نحوه اسم باشه هر کدوم حالت باشه چه معنای حرفی باشه چه معنای اسمی که بخواهد دلالت بر عام مجموعی بکنه نذید این رو با باید با یک جمله افاده بکنه با یک کلام افاده بکنه اینجا ظاهرا مراد همون عام مجموعی یعنی جامعه رو در نظر, نظر گرفته این علاوه که جامعه به باطل نباشه این که عنوان لا تعلق و امواله ما چرا چون ادعا کردن وقتی شما کتاب رو میگین کتاب مال شماست اون صد تومن مال شما نیست اما کتاب رو میگین صد تومن میگین بازم صد مال شما یعنی این کتاب و این صد تومن من هیث المجموع به جامعه نسبت داده میشه پس مراد از ظاهرهای مبارکه لا تأکل و اموال کن بین کن بالباطل اصلا مرموم استاد اصلا که اینجا با سربیت مقابله نیست لیکن انسان هم سربیت باشه هم مقابله باشه هم به اصطلاح عموم باشه هیچ مشکل نداره یک مشکل خاصی در وسط نداره مثلا ایشون در این کتابی که الان می‌خونن تفسیر قرطبی، تفسیر قرطبی انصافاً معلّای است و مخصوصا مخصوصاً آیینی که مهیل باشن آیات الاحکام رو نگاه بکنن تا اونجایی که من می‌ذارم تفسیر کامل نه فقط خاص سایر احکام تفسیر کامل قرآن نه اید مثل این کتاب در آیات الاحکام خیلی استعاره خوبی کرده به مناسبت آیات هم زیاد است بحث کاری میشه بحثی تفسیری خیلی خوبه کتاب تفسیر قرطبی یکی از مزایای مهمش مثلا ایشو اینجور گفته لا یعکل بعضا کن ماله از این لا ترکل و اموالکن بین رو اینجور معنی کرده چون میگه معنی که لا ترکل و اموالکن به لذا ایشون طبق این تصور اینطور گفته فید خلوفی فیهاده القمار و الخدا و المخصوب و جهد الحقوق و مالا تسیب و بیه نفس و مالکه او حرمت و شریعه که محر البقید و حلوان الكاهن شیرینیک به این منجمه ها و به این ها میدن حلوان و اسمان الکمور و خنازی، و حیرزاله این شماعه دیگه دیگه کردیم محنای عام میکرده اما چرا اون تفسیری که ما از ترین معلوم نیست این تو شامل بشه مشکل ما با آلین همینجاست دقیق بکنیم مثلا لا تأکل و بین من این نظر برای همین که مثلاً تو مثلا و المحسوب محسوب وارد میشه محسوب جز امقال کم میشه ما نیست این بین ما نیست این یک و, و مبادله نهفده تو کاره رفیم مال اید. این نکته ما نگهش کردن که برای که با اینشون لا, یعنی لا یعنی لا یاکل بعضی مال بعضن برای لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل رو من به مولای فاطمه میگم بگم که من به ذهنم میاد اینطور نباشه به ذهنم میاد که نه معنا این باشه در داد و در مبادلات مال مثلا قمار خوبه این باطل سر باطله خدا خدا اگر من گول بزنن باشه یک ترکه باشه با مسئولیه با این تفسیر شما بیشتر به همون رعی باید که سببیت رو داره شما به پول نازم یعنی نه ممکنه سببیت نباشه هم باشه نه قصد که مقابل هم هست مقابل باطل نه قصد که مقابل شیده نیست که ببینید طبال مبازلی من اصلا مال کسی بگرفتن مبازلی نشده به خلاف این که پول برشت این به حاکم که به نفع من حکم بکنه اینجا این مبازلی شد ظاهرت من حالا بودن فکر می‌کنم چون خیلی لطیفه من به ذهن من میاد که اموالتون بینتون رو با هم معنا بکین مراد در جامعه است این لا تعکولو چون اینا گیر کردن که چرا فضل لا تعکولو اموالتون این لا تعکولو اموالتون نخونید بینتون میشم بیارید یه بچه‌اش مبادلات باطل نباشه اموال رو با باطل مبادله نکنید این جور میشه لطه کنو فریق من اموال ناسب العز با گناه به صورت گناه شما اموال مردم رو میخورید پس این کتاب به مجموعه اموال رو هم در مجموع بیده این بحث الان به ایجار ختمشون کنم یه نکته زریفی هست که فوق العاده به نظر من زریفه من به این هیئت نیدم کسی بحث بکنه آن باید مراجعه کنم شما یا حال من این کامپیوتر نگاه بکنم ببینید ما در قرآن غیر از این مورد موردیه هم داریم لا تخون الله و رسول و تخونه امانات کن ولا تحکل و اموال کن بینکن بالباطل و تدروبه ها گفته شده اینجا لا تدروبه هست لا در تخدیره به سیبه نسبت داده شده ان در تخدیره منسوبه. حالا اون دسته عدبیاتی شناش خود مراجعه کنم ولی یه چیزی که به ذهنم آمده در قرآن در یک از این موارد لا را حسیت میکنه در یک از موارد میاره. من به نظر یه نکته یه عدبی داره تعبیری داره حالا مثل لا نیسته نیسته نیسته نیسته نیسته این مرنس اونجور باشه ببینید اینجا داریم لا تأکل و اموالکن بینکن بالباطل و تودین رو به هایلالحکام در اینجا در این, در این کتاب در کتاب مرتبی نقل کرده و کتاب در مصحط در مصحط عبی هست ولا ها لا اورده ببینید در همین سوره در آیه چه چلو بنی اسرائیل. ولا صدب صلحقت دل و تکت و یعنی ولا تکت لا تکون الله و رسول و تکون امانت کن هم در حال داشتن آیات مبارکه و مراجعه بفرمند به نظر من میاد یک نقطه اون ادبی که از فیوهی ها نرسده اون نیست در همین سوره بقره آیه چه دو آیه چهه یا آیه قبلش و آمنو به ما انزلتو مصدرن لما مأکن خطاب بنی اسرائی ببینید ولا تکونو اول کافر به ولا تشترو با آیاتی سمنان قلیده لا تکرار شده و لا تکون و اول کافرنده به لا تشتن با آیاتی سمننده این آیت همین صوره بقیره آیت چلیه یک بود؟ بود؟ لا دل باطل و تک هم اینجا لاران ساده. ساده من فکر میکنم یک نقطه زریفه به صلاح بلاغی در شوید داره این هر کار این است که رو بکن خیلی باز ذریف باشه این آیه ساده شدنو هست ساده شدنش تو سر و غیره لات هکو و هم رو و لای دوم افتاده دو سایه دیگه که از خوشتر هم نکیش لای دوم رو اول کی افتاده و علاوه دیگه هم گری اگر آلمان هم این نکردم شد می‌شه بگم که مثلاً مشخصاً این ماجر مفرسان لاها رو نذاره. بعضی از شین نوشتن ماجری که لاها و حروف مصحف آوردن. علایا رو این بود به نظر من یک نقطه باشه. حالا تا شب فکر بکنم این به ذهن شما نقطه میاد. این بود یک نقطه باشه که یک جا لا میاد یک جا نمیاد. اینکه لا به معنی و انلا به قول سیولاتهش به انلاش به و به معنی معه باشه فکر نمی‌کنم این باشه. احتمالاً ظرافت دیگری